بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلّ الله فل سید و محمد و آلها قاهرین جلسه خسته دریه روز روزهای مبارک با نام و یاد الهی و با عرض ارادت و خاندان ایمه محسن حضرت فاطمه معصومه الله علیه و ایمان علیه و السلام با عرض تبریک با محسن مقدس محمد عصر علیه السلاط شروع خواهیم کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد <تصفيق> و قبل که به شکل رسمی درس رو آغاز کنیم مجموعه که در اینجا هستیم کسی در جمع ما ترجمه و مفاهیم خوانده مهم این است از این سوال که وقت ما قرآن کریم رو میخوانیم بیتونیم ترجمه بیکنیم اینی توانایی را اگر در جمع ما کسی داره برای ما بیدین اگر نداره اینکه هم بیدین خب پس کسی توانای ترجمه نداریم درست اگر موافق هستین از دوره قرآنی یعنی از ترجمه مفاهیم شروع کنیم که آهسته توانایی اونجا رو پیدا کنیم موافقین؟ خیلی داریم چون که ما توانایی ترجمه مفاهیم قرآن را نداریم لذا برای بار اول از آغاز شروع خواهیم نمود. آغاز این درس را با همه کتاب قاید بغداده که آغازین آغازین انشاءالله با پیش ماریم و کسایی که تواناییشان بیشتر هست اینو به گونه رویشت تدریس یاد بگیرم تدار دیگه اینو که تازه یاد میگیریم و تازه یاد بگیریم صفحه یازده رو باز کنیم نویشته هست الوحدتالاله الهجام وحده تول یعنی چی؟ بخش اول. اول الهجا <تصفح> الف با. با الدرس اول خروف الهجا در پایینش نویشته هست خب شم با شما میخوانیم چرا چون ما بنا هستم شوالا وارد عربی بشیم در پاورکش هم نویشته هست العر... الابجدیت العربیتو ثمانیت و... و عشرون حرفا الف با عربی 28 حرف هست و مع افراد حرف الحمزه تی بدکر تسبح و کتالی و با جدا خواندن حرف حمزه با ذکر رو یاد آورشان همچون زیر می گردد علیف با انتا تا آخرش که حالا رو حمزه رو اضافه کنیم بالای 28 چند می شند درست درستد خب با افراد حرف خمزه کلگیشان میشه بیستونو حرف درست؟ پس وحدت اول ما، قسمت اول ما شد تمام بیاین روی وحدت ثانیه الوحدت ثانیه الحرکات القصيرة م? وحدت ثانیه یعنی چی؟ بخش دوم بخش دوم الحرکات القصيرة حرکات صداهای صداهایی کشیدن؟ کتا حرکات جمع حرکت است. متوجه شدیم؟ حرکات صفحه 13 حرکات جمع حرکت درست شد؟ حرکت یعنی صدا قصیره نماز قصر چیه؟ کتا دیگه یعنی صداهای کوتاه. ما چند تا صدای کوتاه داریم؟ 28 تا. دا. مرات 7 7 خوب فتحمو سلام خیلی خوب اینم تمام بیایم روی صداهای کشیده صفحه 18 الوحده الثالثه الوحده الثالثه النذور النذور وحده یعنی چی مدود مد مدود جام مد مد رو معنیش چی آره؟ امتداد درست درستو؟ آره؟ خیلی عالی. چند تاست؟ ستا. اگر گفتیم احسن. خوب در فرسی میگیم که چی؟ علیف مدیم آه، علیف مدیم علیف رابعه، صفحه رابعه و هشرین صفحه بیستو چار تو رابعه، کسی میتونه تعریف کنه؟ تنویم <تصفيق> تنوین. خب این دستگاهش بود خو؟ کسی میتونه تنوین رو تعریف کنه؟ ما یکم اگر بگیم همه که میگه نون ساکین است که. خ است. در خاندم خب این نون میشه ولی در نوشتن نوشته نوشته تنوین همونه دیگه درسته؟ خب. از اما بالفتح و اما بالکسر و اما بالون تنوین یا بافتح هست تنوین بافتح یعنی چی تنوین با دوتون زبر کسر با دوتون زن با دوتون پش خیلی آلی، الوحدت الخامسه، السکون صفحه التاسع و عشرین، دست و میکنیم؟ چند نو ساکن داریم؟ حروف ساکن هست، یک حروف مدی هست، و یک حروف علا هر سه گونه اینها ساکنند دقت میکنین هم 28 یا 29 حرف میتونه ساکن باشه به شکل عادی درستو یک گونه از ساکن ها ساکنه است که ما تحت حروف مدی یاد میکردیم حروف مدی چند تا بود سه تا کدام کدام بود الف هم ساکنند دیگه اگه ساکن نباشه نه یعنی باید حرکت داشته باشه حرکت داره پس ساکنند خیلی شد؟ یکی هم حروف اِلّه هست حروف اِلّه دقیقا شده حروف مدیست باید تفاوت بسیار ریز خب، بیاین صفحه میشه درس بعدی درس سابع و عشر عشران. صفحه سویت تسکین و حروف اِلّه تسکین و حروف اِلّه یعنی ساکن کردن حرف های اِلّه حرف الله یا علیف هست یا واو هست و یا هم یا در آلم واقع دو تا حرف الله داریم یکی واو یکی یا علیف نیست خواهم اما علیف هم اینجا اضافه میشه کدام حرف خب این علیف و واو و یا که حرف مدی هست که حرف الله هست خواهم علیف ما قبل مفتو مدیتون دائما فهم میدیم الف وقتی که قبل از ماقابل، این وقتی قبل الف هست، مفتوح مفتوح باشه. یعنی چی؟ آه. وقتی که الف قبلش فتح داشته باشن، دائم این الف محرف است پس هرتفعلد نیست. مانند اند چالل انتظار. انتظار چی شد؟ انتظار چی شد مترجمان انتظار چی شد انتظار طولانی شد قال انتبار. انتظار طولانی شد اینجا خوب دقت کنین در انتظار هم الف داره ما قبلش مفتوح در قال هم الف داره ما قبلش ف پس بنا این الف طالع و انتظار چیست؟ مد آه حرف مد, مد. وو ماقغل مفتوح علیتون ماقغل مزمون مدیتون وو اگر قبلش فتح باشه چی؟ اگر زمه باشه؟ او رعو حل احسن الوو فی کلمت او رع غلية ولكن هذا هذا الحرف يعني كلمة واو في كلمة جودك مادية. مادية؟ مادية. آه أحسان مادية. ي مقار المفتوح مثل دينه دين مدیه صحیح؟ طیب، الان نحن نجیو الى درس التامل 10 با هم نیائیم در درس؟ بسوامان وقت بستو بستو؟ بستو سه، سه هش، افسان، علا واغل علا نحن نعرف بعد نهت الى درس القادم تسکنه یا الاله نحن نعرف کل همه میدانیم دیگه اینه درسته؟ آره؟ انشاءالله الان نحن نجه الى الوحده السادسه الشدة. وحده سادسه یعنی؟ وحده سادسه؟ آه. جوز جوز یا قسمت یا بخش؟ جوز یا قسمت الشده ها تشجير الشبه ايضا اما بالفتح و بالكسر و اما بالزن اما بالفتحة واحدة و اما بتنمين الفتح بتنمين الفتح فهمنا؟ نعم لا نعم لا نعم يعني بلی لا نخایر طيب الوحده السابعه القراءه درسنا اليوم شفنا الى ما تواجه درس امروز ما سعی كنيم حروف هجا بود یک صداهاي توتا بود دو صداهاي کشیده بود سه تنوين بود 4 شدت بود 5 سکون بود 6 شد؟ خب خب دقت کنید. اون چی که مهم هست در این میان شدت ها باید شدت پدا بشه و ایلا معنی کلمه تغییر میده یعنی شما بعدا که عربی صحبت کردین این اگر جای شدت بود شما شدت ندادین دیگر کار خراب میشه درست ها؟ جمله اینطوری تغییر میده ببین. یک نفر میگه درس خاند درسه دارس خون. یک نفر دیگه مو درس داد تفاوتی درس خوند و درس داد با شدت هست اگر بگیم درس یعنی درس خوند اگر بگیم یعنی درس اگر یعنی تدریس کرد درس داد درست شد آه، همین تشدید تشدید آمد که بین این دوتا کلمه دو. معنی رو تغییر داد. برست شد؟ هست در قسمت مد و قصر کلمه ای که مقصوره باشه باید قصری ادا کرد برست اگر ما مد بیدیم معنی عوض خواهد شد و همچنین کلمه ای که مدی هست باید مدی ادا کرد اگر قصری بخوایم معنی آ دارد آواز خواهد شد ممکن است معنی معنی دیگه شد درست شد پس قسمت اول درسی ما در همین جا و پایان روز شنبه انشالله قسمت بعدی بخش قائده را خواهیم خواند و صلّ الله على سیدنا محمد و آلها قاهرین